حصل کنار زمین ایستاده بود و در جا قدم دو میکرد. بلوز و شورت ورزشی مارکنهایی که جدیدش به بدن خیزش شسبیده بود رفته بودم تا سلام میکنم و بگویم که آن شب با او به گرده هماییشان در کافه نخواهم رفت نیتن رفته بود مرخصی و من باید جایش می‌ماندم. این سومه ثومه که قیبت میکنی واقعا؟ انگشتم شمردم. شموردم آره مسنگه. هفته بعد باید بیای. قراره برای اکستریم وایکینگ برنامه ریزی کنیم هنوزم به من نگفتی چه برنامه برای تولدت داری بعد نرمش را شروع کرد پایش را بالا و پایین برد و سینهش را به زانو فشار داد میایی بریم سینما؟ این روزا که تمرین داریم دلم نمیخواد غذای مفصل بخورم. پدر و مادرم در تدارک شام مخصوصن. پاشنه پایش را گرفت و زانویش را به زمین زد. ناخداگاه دیدم که پایش به طرز عجیبی اذلالانی شده است. شام توی رستوران که نیست. نه. نه تا این حد مفصل نیست. پا خودم فکر کنم باید برنامه ای داشته باشیم. مامی این روز اصلا دل و دماغ نداره. هفته قبل ترینا رفته بود. البته بدون کیف لیمویی لوازم آرایش من. مادرم زانوی قم بغل کرده و اوضاع مصیبت زدهتر از بار اولی بود که ترینا به دانشگاه رفته بود. مادرم به شدت دلتنگی توماس بود. انگار دست یا پایش را قطع کردند. اسباب بازی هایش را که از همان بچگی در اتاق نشیمن پخش و پلا بود جمع کرده و از دم دست برداشته بودند دیگر داخل کابینت خبری از شکلات انگشتی یا جبه های کوچکی نوشیدنی نبود بعد از ظهرها ساعت سه و پانزده دقیقه قدم زنان تا مدرسه نمیرفت و کسی نبود که مسیر کوتاه تا خانه را با هم گپ بزنند در واقع فرصتی برای بیرون آمدن مادرم از خانه بود ولی حالا واقعا تنها شده بود این روزها به غیر از خرید هفتگی که با بابا میرفت از در خانه بیرون نمیرفت سه روز اول مثل روح سرگردان در خانه میچرخید بعد سخت سرگرم خانهگانیه بهاری شد طوری که پد به وحشت افتاد پدربزرگ روی صندلی نشسته بود که مامی زیر صندلی را جارو برقی میکشید به در شاکی میشد. ترینا گفته بود که تا چند هفته بر نمی گردد تا توماس بتواند به آنجا عادت کند و هوایی نشود هر شب که زنگ میزد مامی با هردو صحبت می کرد. بعد هم دستکم نیم ساعت داخل اتاقش گریه میکرد. این روزا تا دیروق سر کاری نمی بینم دیگه. خب خودتم هم که همش تمرین داری پاتریک پول خوبی میدن. وسوسه میشم و نمیتونم اضافه کاری رد کنم. پاتریک به صحبت ادامه نداد. بیش از هر زمان دیگری در زندگیم درآمد داشتم. حالا دو برابر به والدینم پول میدادم. هر ماه هم مقداری به حساب پس‌اندازم میگذاشتم. هم آنقدر برایم میماند که نمیدانستم چگونه خرجش کنم. بخشی به این علت بود که همیشه سر کار بودم. در ساعت‌هایی که فروشگاه‌ها باز بودند، من در گرند هاوس بودم. دلیل دیگرش این بود که چندان میل خرید نداشتم. وقت فراغتم را در کتابخانه میگذراندم و در اینترنت میگشتم. با کامپیوتر تمام دنیا در دسترسم بود و کم, کم برایم به یک جاذبه فریبنده تبدیل شد. شروعش با یک یادداشت تشکر بود. یکی دو روز بعد از کنسرت، به ویل گفتم که بهتر است یادداشتی بنویسیم و از دوست ویل زنش تشکر کنیم. گفتم سر هم که می اومدم یه کارت خوشگل خریدم هر چی میخوای بنویسم فقط بگو خودکارم اووردم ویل گفت فکر نکنم لزومی داشته باشه چرا شنیدی چی گفتم که لزومی نداره این مرد ما رو تو ردیف جلو نشوند خودت گفتی که عالیه حداقل کاری که میتونی بکنی تشکره آرواره ویل ثابت بود بدون کمترین تکان خودکار را پایین گذاشتم شاید فکر میکنی مردم وظیفه دارن کاری واسط بکنن تو هم مجبور نیستی از اون تشکر او کنی آره؟ کراکتوهی چی نمیدونی تو چه میدونی که برای آدم چقدر سخته که دیگران براش مطلبی بنویسن عبارت از طرفه خیلی توهینآمیزه. نامیزه اما بهتر است ای در هر صورت من ازش تشکر میکنه. حالا اگه ناراحت میشی میتونم هیچ اشاره ای به اسمتا نکنم یاد را نوشتم. حرف بیشتری در این مورد نزدم. اما آنشب همینطور که حرف ویل در گوشم زنگ میزد به کتابخانه رفتم. میخواستم ببینم وسیله هست که ویل به با دست خودش چیزی بنویسد. ظرف یک ساعت با سنمونه برخورد گردم. نرمافزار شناسایی صدا نوع دیگری نرمافزار که با پلک زدن کار می کرد و همانطور که خواهرم گفته بود نوعی وسیله ی که ویل می به سرش ببندد. خودم از قبل می ویل با دیدن وسیله که به سرش ببندد هوپیف می کند. اما اعتراف کرد که نرمافزار شناسایی صدا چیز خوبی است. ظرف یک هفته به کمک نیتن موفق شدم این نرم را به کامپیوترش نصب کنم. ویل می میز کامپیوتر هم به سندلیش وز بود. حالا به کسی نیاز نداشت که برایش تایپ کند. ویل اولش عصبی و دست باچه بود. انگار خجالت می کشید، اما بعد که گفتم با این شروع کن، میس کلارک یک نامه بنویس آرام شد. حتی خانم ترینر هم چیزی برای ایرادگیری پیدا نکرد. خانم ترینر گفت، اگر کار دیگه هست که فکر می کنی می مفید باشد به ما بگو. لبهایش را چنان به هم میفه شد که انگار هنوز باورش نشده که چه امکان خوبی در اختیار پسرش قرار گرفته است. سه روز بعد درست موقعی که داشتم سر کار میرفتم پستچی برایم نامه آورد. توی اتوبوس بازش کردم. فکر می کردم تبریک زود هنگام تولد است از طرف یکی از دخترخاله های راه دورم. با تایپ کامپیوتری نوشته شده بود. که عزیز؟ این یادداشت را نوشتم تا بگویم آنطور که تو فکر میکنی از خود راضی نیستم و برای تلاش هایی که میکنی ارزش قائلم. متشکرم، ویل. قاه قاه خندیدم. چون خنده‌ای که راننده اتوبوس پرسید مگر بلیط بخت‌آزمایی برنده ای. بعد از سالها خوابیدن توی اتاق قوطی کبریتی و لباسهایی که در میله راهروی بیرون آویزان بودند، اتاق ترینا برایم حکم کاخ داشت. شب اول که آنجا خوابیدم دستهایم را در دو طرف دراز کردم و از اینکه همزمان می توانم دو دستم را دراز کنم بی آنکه به دیوار دو طرف بخورد لذت بردم به فروشگاه دایی رفتم و رنگ و پرده کرکرهی نو خریدم با چراغ کنار تخت و چند قفسه که خودم سرهم کردم. البته این طور ها نبود که از این کارها بلد باشم بلکه فقط میخواستم ببینم از اوتاش برمیآیم یا نه اتاق را تغییر دکوراسیون دادم. یک شب بعد از کار یک ساعت وقت گذاشتم و اتاق را رنگ زدم. آخر هفته اتاق طوری تغییر کرده بود که حتی بابا هم گفت عالی شده. به پرده کرکرهی که خودم برش داده بودم دست کشیده و گفته بود لو این کار عامل موفقیتت می شود. برای لحافم روکش جدید خریدم با قالیچه و چند کوسن بزرگ. برای مواقعی که کسی به اتاقم آمد بتواند لم بدهد، تقویم را هم پشت در اتاق جدیدم زدم. کسی غیر از خودم نمی دید. کسی غیر از خودم معنیاش را نمیدانست. اصلاً. اصلا. هر روز با این فکر که ویل را به کجاها می توانم ببرم سر کار می رفتم. هیچ برنامه کلی نداشتم. همان روز فکر می کردم که چه کار کنم. ویل را بیرون ببرم و کاری کنم خوشحال شود بعضی روزها هم حالش خوب نبود، مفلوک و دردمند توی رخت خواب میکشید می کشید که این بخشش از همه سختتر بود. اما موفق شدم چند بار که مشکلی نداشت ببرمش بیرون و در آفتاب بهاری بگردانم. به حالا می دانستم یکی از چیزهایی که ویل به شدت بدش میآیدطرحم ترحم هاست. برای همین به نقاط زیبای بیرون شهر می بردمش و یکی دو ساعت می گشتیم جایی که غیر از خودمان دو نفر کسی نبود. پیکنیک میرفتیم و توی دشت ولو شدیم. از نسیم لذت میبردیم و خوشحال بودیم در خانه نیستیم. یک روز بعد از اور که داشتم برایش ساندویچ پنیر و خیارشور درست میکردم گفتم دوست پسرم دلش می‌خواد ببیندت. چند کیلومتر از شهر دور بودیم. روی تپه نشسته بودیم و قلعه را در آن طرف دره دیدیم. فاصله بین ما و قلعه را زمین‌های سرسبز می‌پوشاند. چرا؟ دلش میخواد ببینه من شبها تا دیر وقت با کی وقت میگترونم حس کردم خوشحال شده است عجیب بود این مرد دونده فکر کنم پدر و مادرم هم دوست دارن وقتی یه دختر به هم بگه که پدر و مادرش میخوان منو ببینن دست با چه میشم حالا مادر چطوره؟ مثل همیشه کار پدر چی شد؟ خبر جدیدی نیست؟ نه بهش گفتن هفته یاینده بگذری بهم گفتن اگه دلم خواست جمعه برای تولدم دعوتت کنن. خیلی راحت البته مهمونی خونوادگیه اما خوب میشه بیای بهشون گفتم که تو نمیای. کی گفت من نمیام؟ تا از غریبه ها بدت میاد دوست نداری جلوی دیگران غذا بخوری. از وراجی دوست به سرم خوشت نمیاد. مثل روز برام روشنه. تازه یاد گرفته بودم که با ویل چطور برخورد کنم. وقتی میخواستم به کاری وادارش کنم راهش این بود که بگویم میدانم دوست ندارد و انجام نمیدهد. هنوز لجاجت و یک دندگی در وجودش داشت و نمیتوانست تحمل کند کسی به جای او تصمیم بگیرد. ویل مشغول خوردن ساندویچ یک دقیقه بعد گفت نه میم تولدت دست کم اینکه مادرت موضوعی برای فکر کردن پیدا میکنه واقعا؟ خدای من اگه بهش بگم همین امشب شروع به شستن و سابیدن میکنه مطمئنی از شکم اون بیرون اومدی؟ نه بعد بهش رفته باشی کلارک لطفاً سندویچ بده خیار شروع بیشتر بزار. داشتم کمی سر به سرش وقتی مادرم فهمید قرار است مهمان معلول داشته باشد قاطی کرد دستش را رو روی صورتش گذاشت بعد هم سرگرم مرتب کردن خانه شد انگار همین الان که خبرش را دادم ویل وارد خانه میشد. اگه خواست بره دستشوی کار کنیم؟ طبقه پایین که دستشویی نداریم گمون نکنم بابا بتونه بردش طبقه بالا من میتونم کمک کنم ولی نمیدونم دستم باید کجا بذارم. پاتریک میتونه؟ نگران اینجور چیزا نباشید اصلا. قزوش چطور؟ باید پوری خودش رو بخوره؟ چیزی هست که نباید بخوره؟ نه، فقط باید کمک کرد و گذاشت دهنش. کی این کارو میکنه؟ خودم. راحت باش مامی، خیلی نازنینه. ازش خوشتون میاد؟ ترتیب همه چیز داده شد. نیتن ویل را سوار ماشین می کرد و میآورد دو ساعت بعد هم می آمد و برمیگرداند خانه و کارهای شبش را انجام میداد تعارف کردم که من هم بروم و کمک کنم، ولی هر دو اصرار کردند که روز تولدم باید به من خوش بگذرد. با این حرفشان معلوم بود پدر و مادرم را نمیشناسند سر ساعت هفت و نیم در خانه را به روی ویل و نیتن باز کردم. ویل کت و پیراهن شیکش را پوشیده بود. نمیدانستم خوشحال باشم که شیک آمد یا نگران چون مادرم میخواست یک ساعت اول مهمانی را همش ناراحت باشد که چرا لباس بهتری نپوشیده است پدرم پشت سرم وارد راهرو شد بچه ها سطح شیبدار آماده است ؟ تمام بعد از ظهر سرگرم ساختن سطح شیبدار برای پله های بیرون بود نیتن با احتیاط فراوان صندلی چرخدار ویل را هدایت کرد و از راهرو خانه خانهمان عبورده نیتن وقتی در را پشت سرش بستم، گفت آره خوبه، خیلی خوبه، توی بیمارستانا بهتر از این دیدم بابا دستش را جلو برد و با نیتن دست داد برنارد کلارک بعد هم دستش را به طرف ویل گرفت، اما یک دفعه هول شد و دستش را عقب کشید با لکنت زبان گفت برنارد هستم، ببخشید نمیدونستم چطور باید با... آ... نمیشه دست بدیم. همین که تعظیم کنید کافیه. بابا لحظه به با او زل زد. بعد که فهمید ویل شوخی میکند با آسودگی قاه قاه خندید. به شانه ویل زد و گفت. <تصفيق> بله، بله. تعظیم خیلی هم خوبه. <تصفيق> همین میخندید. یخ شکسته شد. نیتن چشمکی زد و دستی دکان داد و رفت. ویل را از آشپزخانه عبور دادم. خوشبختانه مادرم شان ساود. چون بشخاب دستش بود و مشکلی برایش پیش نیامد. مامی، ویل رو معرفی می ویل، مادرم جزیفین. مادرم لبخندی به ویل زد و گفت. لطفاً درستی صدام کنید. دستکش مخصوص فرت و آرانجش می رسید. ویل، خوشحالم که بالاخره دیدمت. ویل گفت. منم خوشحالم از دیدنتون. مزایم نباشم. لطفا به کارتون برسین. مادرم بشقاب را پایین گذاشت و دستی به موهایش کشید. این حرکتش همیشه نشانه خوبی بود. اما بد شد که اول دستکش را از دستش در نیاورد گفت. <تصفيق> شرمنده غذای توی فرق باید به موقع بیاد بیرون ویل گفت: خواهش میکنم آشپز نیستم اما عاشق غذاهای خوشمزه هستم برای همین دوست داشتم امشب بیام بابا در یخچال را باز کرد خب با این چطوری مخصوصه <تصفيق> ممنونم ویل چرخ ای سر کشید. من توی آشپزخانه ایستاده بودم. یک دفعه به خودم فکر کردم چه خانه کوچک و افتضاحی داریم. کاغذ دیواریها از دهه 1980، کابینت های آشپزخانه همه داغون و قور. خانه ویل واقعا شیک و با سلیقه مبله‌بندی شده بود. دکور زیبا و ساده ای داشت. پیدا بود 90 درصد وسایل خانه ما از فروشگاه های ارزان قیمت خریداری شدند. هر جایی دیوار که خالی بود با نقاشی های لبه برگشته ی توماس پر شده بود. شاید ویل به این چیزها توجه کرده بود ولی بروز نداد. بابا و ویل موضوع مشترکی برای صحبت پیدا کردند. اما بعد حرف به من کشیده شد و اینکه چقدر به در نخور هستم. اهمیتی نمی دادم. هر چه بود هر درشاد می کرد. می دونستی یه بار که دنده اقعا به صندوق پاست زد؟ بعدم تخصیر و انداخت گردن صندوق پست؟؟ <تصفيق> <تصفيق> باید بیایید و وقتی میخواد سطح شیب دارم و پایین بده ببینید بابا زد زیر خنده بیرون آمدم و گذاشتم هر چی دلشن میخواهد بگویند مادرم دنبالم آمد ناراحت بود سینی لیوانها را رو روی میز غذاخوری گذاشت بعد نگاهی به ساعت انداخت پاتریک کجاست؟ مستقیم از تمرین میاد شاید دیرتر بیاد نمیشد برای تولد تو امشب نمیرفت اگه دیر کنه قصه هست هم میفته مامی چیزی نمیشه دستم را دور کمرم گذاشتم و بغلش کردم از ناراحتی خشک و شق و رق ایستاده بود یک دفعه دلم برایش سوخت مادر من بودن کار راحتی نبود واقعا چیزی نمیشه سرم را بوسید و فاصله گرفت دستش را روی پیشبندش کشید. کاش خواهرت اینجا بود. کار خوبی نبود بدون اون جشن گرفتیم. از نظر من اینطور نبود. برای اولین بار داشتم لذت می بردم که مرکز توجه هستم. شاید بچگانه بود ولی واقعیت داشت. وقتی میدیدم دیدم بابا و ویل از دست کارهای من میخند عشق می کردم. وقتی می دیدن تمام غذاها و دسرها، باب میل من درست شدهاند کیف می کردن. از اینکه می توانستم همان کسی باشم که دوست دارم و خواهرم نیست تا مرتبا گوش ست کند که چه کسی هستم حال می کردم. صدای زنگ در آمد. مامی دستش را به هم زد و گفت. اومد. لو غذا رو بکش. صورت پاتریک هنوز از ورزش برافروخته بود. دلله شد و صورتم را بوسید. تولدت مبارک کوچولو. بوی شامپو و صابون میداد. اتکلون هم زده بود. سرم را به طرف اتاق غذاخوری تکان دادم و گفتم: بهتر مستقیم بریم سر میز. غذای مامی باید به موقع خورده شه. پاتریک به ساعتش نگاه کرد. وای، ببخشید زمان از دستم رفت. فقط زمان خودت از دست نرفت. بله. هیچی. بابا میز بزرگ تاشو را به اتاق نشیمن آورده و به دستور من یکی از کاناپه ها را به دیوار چسبانده بود تا ویل بتواند بدون مانه وارد اتاق شود. ویل صندلی چرخدارش را به جایی که اشاره کرده بودم برد. بعد هم صندلی را تنظیم کرد. حالا کمی بالاتر آمد و هم سطح بقیه بود. من سمت چپش نشستم و پاتریک روبرون نشست. پاتریک و ویل و پدر بزرگ به هم سلام کردند. و برای هم سرتکان دادند. من از قبل به پاتریک یاداوری کرده بودم که دستش را به طرف ویل نگیرد. حتی وقتی هم نشسته بودم میدیدم که ویل پاتریک را زیر نظر دارد. کنجکاف بودم بدنم به همان اندازه‌ای که مجذوب پدر و مادرم شده، از پاتریک هم خوشش آمده است یا نه. ویل سرش را به طرف من گرفت. پشت صندلیو نگاه کنی می بینی چیزی برای شما آوردم هم شدم و دست توی کیفش کردم. یک بطری بیرون آوردم. ویل گفت: همیشه روز تولدت باید از اینا بخوری. مادرم که داشت صرف غذا را می آورد گفت: وای! ببین چه عالی! ولی ما جام مخصوصشو نداریم. ویل گفت: همین خوبه. پاتریک گفت: من بازش میکنم. بطری را برداشت و سیم دورش را پاس کرد. بعد هم شستش را زیر چوب پمبه گذاشت. طوری به ویل نگاه می کرد که انگار همان نبود که انتظارش را داشت. ویل گفت اگه این کارو کنی به همه جا پخش میشه دستش را کمی بالا آورد و به ترزی مبهم با ایما و اشاره گفت اگه چوب پمبه را با دستت نگه داری و بطری و به چرخونی بهتره. بابا گفت خودش بطریش خوب می پاتریک همین کار بکن، باتریکیو به چرخون پاتریک گفت برادم، خودم هم میخواستم همین کار بکنم بطری به خیر و خوشی باز شد به سلامتی تولد من نوشیدیم پدر چیزی گفت که به گوشم آفرین رسید من بلند شدم و تعظیم کردم پیراهن کوتاه کمچین زرد مدل دهه 1960 تنم بود که از فروشگاه خیریه خریده بودند. گرچه برچسبش را کنده بودند، فروشنده گفته بود باید مارک بیبا باشد. بابا گفت: امیدوارم امسال دیگه لو بزرگ شه. اولش خواستم بگم که راهش رو تو زندگی پیدا کنه، اما انگار بالاخره پیدا کرده. ویل، باید بگم از وقتی برای شما کار میکنه پیدا کرده. <تصفح> بالاخره از لاک خودش بیرون اومده. مادرم گفت: مایه افتخار ماست برای شما هم خیلی خوب شده که استخدامش کردید ویل زیرچشمی نگاهی به من کرد و گفت منم خیلی ممنونم ازش بابا گفت افتخار میکنم به لو و موفقیت های پیابهش. مادرم گفت و به بقیه اعضای خانواده که الان پیش ما نیستن گفتم هی، hey, مثل که هر سال باید تولد بگیرم. بقیه روزا که همش دارید دوام میکنید. بعد سرگرم صحبت شدند. بابا داستانهایی از ماجراهای من تعریف کرد و با مادر قشقش خندیدند. خوشحال بودم که می دیدم هفته‌های هفته های اخیر پدرم خیلی خسته و افسرده به نظر می رسید. مادرم هم پریشان و چشمانش گود افتاده بود. انگار روحش جای دیگری بود. دلم می‌خواست خوش باشند و از لحظات لذت ببرند و بدبختی هایشان را فراموش کنند. بگویند و بخندند و روحیه بگیرند. از این نظر لحظه ای احساس کردم پدم نمیآید توماس یا حتی ترینا هم بودند. چنان قرق درفکارم بودم که طول کشی تا متوجه قیافه پاتریک بشوند. داشتم به ویل غذا می ددم. تکهی ماهی دودی برداشتم و دهان ویل گذاشتم. همزمان داشتم چیزی به پدر بز بخش از زندگی روزمره‌ام بود که اصلا به آن فکر هم نمی کردم. برای همین وقتی قیافه بحت زده پاتریک را دیدم، تعجب کردم. ویل چیزی به بابا گفت. من هم به پاتریک زل زده بودم. دلم نمی اینطوری به ویل نگاه کند. سمت چپش به در بزرگ شوخ و شنگ با غذایش بازی بازی می کرد. سر و صدایی ایجاد کرده بود. هم های کوتاه و وزوزهای سرخوشانه، که ما اسمش را گذاشته بودیم حیاهوی قضا. ویل رو به مادرم کرد و گفت چه ماهی خوشمزهی. مزهش واقعا عالیه. مادرم لبخند زنان گفت <تصفيق> قضایی نیست که هر روز بخوریم. میخواستیم امشب با همیشه فرق داشته باشه. همه تلاشم را میکردم با نگاه هم به پاچیک به اینطوری نگاه نکند. سرانجام متوجه نگاه هم شد و صورتش را برگردند به نظر دلخور می رسید. تیکه دیگری دهان ویل گذاشتم. بعد که دیدم به نان نگاه می کند، تیکه نان دهانش گذاشتم. در آن لحظه متوجه شدم چنان به خواسته های ویل آشنا هستم که لازم نیست نگاهش کنم تا بفهمم چه چیزی نیاز دارد. ویل که احتمالاً حس کرده بود مواسب هستم گفت پاتریک، لو گفته که مربی ورزش هستی. چکارم کنی؟ کاش نپرسیده بود. پاتریک رفت بالای منبر و حالا مگر ویل میکرد. از انگیزه شخصی گفت و اینکه چطور تناسب اندام به سلامت روحی کمک میکند. بعد هم از برنامه های تمرینیش برای مسابقه حرف زد. من به این حرف عادت داشتم. ولی در آن دسته که ویل کنار دستم نشسته بود، این حرف را خیلی بیربط میدیدم. چرا ویلچون این سآل کلی و مبهمی مطرح کرد و بعد ساکت شد وقتی لو گفت که شما هم می با خودم فکر کردم نگاهی به کتابان بندازم ببینم هیچ ورزشی هست که به شما توصیه کنم من که داشتم نوشیدنیم رو سر به حال خفگی افتادم پاتریک کاملا تخصصیه. گمون نکنم در تخصص تو باشه من کارهای تخصصی می کنم با آدم آسیب دیده کار میکنم. ورزش درمانی میکنم. پت. گوزک پاک که نشده. یکی دو سال پیش با کسی کار کردم که دوشار فلج پایین تنه بود. خودش میگه که حالا خوب شده. توی مسابقه سگانه شرکت میکنه و خیلی چیزای دیگه. مادرم گفت. چه خوب. میگه تحقیقات اخیر توی کانادا نشون داده که اگه مایه ها رو خوب تمرین بدین دوباره میتونه فعالیت قبلیش رو از سر بگیره. اگه مایه ها رو خوب به کار بگیری هر روز ورزش کنی مثل سیناپس مغزی دوباره برمیگرده. شرط میبندم اگه برنامه تمرینی و خوب اجرا کنی میبینی که چقدر قدر هاتون بهتر میشه. از اینا گذشته لو گفت که قبلا حسابی اهل ورزش بودین. با صدای بلند گفتم پاتریک تو چیزی در این مورد نمی فقط خواستم دیگه صحبتشو نکن همه دور میز سکوت کردند بابا صرفه کرد بعد هم عذرخواهی کرد پدربزرگ بزرگ به طرزی نگران کننده ساکت و به جایی زده بود مادرم هم حرکتی کرد که انگار میخواست به همه نان تعارف کند ولی بعد پشیمان شد پاتریک دوباره شروع به حرف زدن کرد با لحنی که معذب به نظر میرسید تقیقاتی هست که به نظرم میتونه موثر باشه اما چیز بیشتری ازش نمیدونم و نمی تونم نظری بکنم. فیلم معدبانه لبخندی زد و به پاتریک نگاه کرد. چیزی از چهرهش نمیشد خواند حتما پیگیری می کنم. بلند شدم تا بوشقاب ها را جمع کنم. میخواستم از سر میز فرار کنم. اما مادرم دعوا کرد و گفت که بنشینم. مثل اینکه تولد تولودتها... انگار وقتهای دیگر اجازه کار کردن می ده. برنارد، میری جوجه رو بیاری؟ بعد از آن دیگر مشکلی پیش نیامد و بقیه غذا را خوردیم. دقیقا متوجه بودم که پدر و مادرم مجذوب ویل شدند. ولی پاتریک کمتر. پاتریک و ویل بعد از آن کمتر با هم حرف زدند. بعد مادرم برای همه سیب زمینی تنوری گذاشت و پدرم هم طبق معمول زورش را زد سهم بیشتری بردارد. تازه اینجا بود که کمی آرام شدم و نگرانیم بابا از هر دری با ویل حرف زد و چیزهای زیادی پرسید. از زندگی گذشتهش حتی تصادف. ویل هم به نظر می رسید آسوده و راحت به همه سؤالاتش سوالاتش باسخ می دهد. در حقیقت از چیزهایی باخبر شدم که قبلا نمی دانستم. برای مثال شغل مهم می داشت. هرچند تلاش کرد آن را به اهمیت دهد. سهام شرکت خرید و فروش می کرد و سود می برد. بابا هم به طور ذهنی محاسبه میکرد که هر بار سود کلان نمیکرد. دیدم به ویل زل زدم. داشتم به خودم میگفتم این مردی که میشناسم همان سرماگی داره با اراده است که حالا دارد تعریفش را میکند. بابا از شرکتی که قرار بود کارخانه مبلمان سازی را به خرد حرف زد. بعد وقتی اسم کارخانه را گفت ویل با تأصف سری تکان داد و گفت که بله شرکت را میشناسد. بله احتمالا خودش هم مشتریش میشد. طوری حرف زد که هیچ امیدی به شغل بابا نمیشد داشت. مادرم زیر لب چیزی میگفت گفت و بهبه و چهچه چه می کرد. وقتی لبخندش را دیدم، فهمیدم مرد جوان سر میز شامش ویلست است نه پاتریک. حال پاتریک هم بد جور گرفته بود. وقتی مادرم مشغول جمع کردن ظرفها شد، به بزرگ گفت کیک تولده؟ چنان واضح و آور بود که من و بابا شکه شدیم و به هم نگاه کردیم. همه ی آدم های دورمی سکوت کردند. نیز را دور زدم و پدر بزرگ را بوسیدم. گفتم نه بابا بزرگ، شرمنده، دسر شکلاتی شکلاتیه، دوست داری. سرش رو به علامت موافقت تکان داد. مادرم لبخند بر لب داشت. گمان نکنم هدیهی بهتر از این توانست گیر آدم بیاید. دسر شکلاتی روی میز آمد. همراهش هم یک بسته مربع شکل بزرگ به اندازه دفتر راهنمای تلفن، کادو پیچ شده. پاتریک گفت هدیه تولد؟ آره؟ اینم ماره تو. لبخندی به من زد و هدیهش رو روی میز گذاشت. من هم در جواب لبخند زدم. حالا وقت جر و بحث نبود. بابا گفت سوخ باش بازش کن. اول هدیه بابا و مامان را باز کردم. کاغذ کادر را با احتیاط باز می کردم تا پاره نشود. آلبوم عکس بود و تمام صفحاتش بار از عکس خودم. از همان کودکی. یک جا بچه هستم. من و ترینه که دختر بچه های هستیم و بد اخلاق به نظر می رسیم. روز اولی که به دبیرستان رفتم. دامن برایم بزرگ است و موهایم را با سنجاق جمع کردم. عکس های جدیدم هم بودند. من و پاتریک، همانی که داشتم میگفتم راهش را رو بکشد و برود دوباره خودم با دامن خاکستری روز اولی که رفتم سر کار لابلای صفحاتش اکس خانوادگی هم بود اکس توماس و نامههایی که مدرسه برای گردش علمی میفرستاد دستخط خط هایی در مورد روزهایی که رفته بودیم ساحل بستنی که زمین افتاده بودند و مرغان دریایی که از روی آب ماهی میقابیدند و برمیگشتند. آلبوم را ورق زدم لحظه به عکس دختری که موهای بلند سیاهش را عقب زده بود نگاه کردم بعد آلبوم را بستم ویل گفت میشه ببینم وقتی صفحات آلبوم را برای ویل ورق میزدم مادرم به ویل گفت سال خوبی نبودم سال. البته حالا خوب استی موضوع راهه اما خودت میدونی گاهی چیزای پیش میاد دیگه با بزرگ برنامه توی تلویزیون دید در این مورد که ابتکار به خرج بدید و خودتون هدیه درست کنید منم فکر کردم چیزی جالبیه متوجه هستی که گفتم جالبه چشمم پر از اشک شد گفتم مامی واقعا هم جالبه عالی عالی. خیلی خوشم اومد ممنونم واقعا گفت چند از این اکسا انتخاب با بزرگ. فیل گفت خیلی زیبا دوباره گفتم خیلی خوشم اومد نفس راحتی که پدر و مادرم کشیدند قمگین ترین چیزی بود که به عمرم دیده بودم پاتریک بسته کوچک را رو روی میز به جلو هل داد و گفت حالا کادوی منو باز کن آهسته بازش کردم. لحظه هل شدم که شاید حلقه نامزدی باشد من اصلا آماده نبودم. هنوز نمیتوانستم فکرش را بکنم که وارد زندگی زنشویی بشوم. جعبه کوچک را باز کردم. وسط مخمل آبی تیره زنجیر ظریف طلا بود. با ستاره کوچک. زیبا و خیلی با سلیقه انتخاب شده بود. ولی از نوع من نبود. هرگز به عمرم از این جور زیورالت استفاده نکرده بودم. نگاهم را به آن دوختم و فکر کردم چه بگویم. پاتریک خم شد و زنجیر را دوره گردنم بست. گفتم. خیلی قشنگه. پاتریک گفت. خوشحالم که خوشت اومده. لبم را بوسید. تا آن روز جلوی پدر و مادرم اینطور مرا نبوسیده بود. نگاه ویل به من بود. با چهره ای سرد و بیه حساس. بابا گفت. خب، فکر کنم حالا بعد پودینگ بخوریم. قبل از اینکه گرمشه. <تصفيق> بعد هم از حرف خنده‌دار خودش قاخا خندید. نوشیدنی در سراسر سر بدنش جریان پیدا کرده و اثر کرده بود. ویل آرام گفت: تو کیفم چیزی برای تو هست. همون کیف سیاه پشت صندلی. با قاخ از نرینجی. بسته مستر از کوله پشتی ویل درآوردم مادرم مکس کرد. قاشق دسر دستش بود. ویل، واسه لو کادو گرفتی؟ واقعا لطف کردی. برنارد، میبینی چه لطفی کرده؟ مگه نه؟ واقعا لطف کرده. کاغذ کادو طرح روشن کیموناهای چینی داشت. فوری به خودم گفتم کاغس کادو را نگه میدارم. حتی شاید لباسی به این رنگ میخریدم و میپوشیدم. روبان را باز کردم و کنار گذاشتم تا بعدا استفاده کنم. کاغذ کادو و بعد هم کاغذ بسته بندی را باز کردم. آنجا توی جعبه جوراب شلوادی راه راه عجیب و غریب زرد و سیاه به من زده بود اندازه بزرگ سالش پشمی و مات و به قدری لطیف که زیر دستم سر میخورد. گفتم باورم نمیشه. سدم زیر خنده خنده سرخوشانه و غیر منتظره وای یه بزرگ این از کجا گیر بردی؟ خودم سفارش دادم خوشحال میشه اگه بدونی با نرم افزار شناسایی صدا سفارش دادم پاچیک و بابا همزمان گفتند. جراب شلواری زیباترین جراب شلواری دنیا. مادرم با دقت نگاه کرد و گفت لو مطمئنم وقتی بچه بودی شبیه اینو داشتی من و ویل به هم نگاه کردی قادر نبودم جلوی لبخندم رو بگیرم گفتم دوستانم همین الان نبوشمش پدرم همینطور که سرش رو تکان میداد گفت خدا یا شبیه مکسوار تو فیلم کندو میشی برنارد تولدشه هرچی دوست داره میتونه بپوشه از اتاق بیرون دویدم توی راهرو یک لنگه را پوشیدم پنجه پایم رو بالا گرفتم از لطافتش لذت می بردم گمان نکنم در عمرم هیچ حدیهی ای به این اندازه خوشحالم کرده باشد برگشتم ویل آهست گفتور را با بزرگ به میز زد مادر و پدرم قشقش ددن زیر خنده پاتش کم ماتش برده بود گفتم اصلا نمیتونم به چه زبونی بگم که چقدر عاشق این جویراب شلواریم. متشکرم متشکرم. دستم را جلو بردم و زدم به شنش از دل دوست دارم. ویل گفت یه هم هست بردن بازش کن. وقتی ویل داشت می پدر و مادرم کلی لیلی به لالاش گذاشتند. بابا که مست بود یکسره از ویل تشکر می کرد که استخدامم کرده است. از او قول گرفت که باز هم بیاید. اگه یه وقت کارم از دست دادم میام و با هم فوتبال تماشا میکنیم. ویل گفت. چه عالی دوست دارم. با اینکه هرگز ندیده بودم فوتبال تماشا کند. مادرم مقداری دسر شکلاتی بسته بندی کرد و به زور به ویل داد. دیدم خوشت اومده. لابد تا یک ساعت بعد از رفتنش میخواستن تعریفش رو کنند و بگویند چه آقایی واقعا یک پارچه آقاست. پاتریک هم تا راه رو آمد. دستش تا تحت توی جیب بود. ظاهرا میخواست مشکلی مشکل دست دادن با ویل رو حل کند. خوشخیال ترین فکری بود که می توانستم بکنم. ویل گفت. خوشحالم از دیدنت خیلی ممنون از راهنمایید. پاتریک گفت فقط چون دوستم لو کارش کارشو به بهترین نحو ممکن انجام بده همین کلمه دوستم را با تاکید عدا کرده بود ویل گفت مرد خوششانسی هستی نیتن او را با خودش به طرف در برد بیر اختخابم خوب آدم میشوره این حرف را سری به زبان آورد و پیش از اینکه که پاتچیک متوجهی حرفش شود در پشت سرش بسته شد. بودی توی رختخواب همومش میکنی. آمده بودیم خانه پاتریک. آپارتمانی نوساز در حومه شهر. با اینکه به پارک کوچکی مشرف بود و سه طبقه بیشتر نبود، مثل زندگی در اتاق زیر شیروانی می‌ماند. منظورش چی بود؟ تو همه جاشو میشوری؟ شیرپاک کن رو برداشتم. یکی از معدود وسایلی بود که اجازه داشتم توی خانهاش بگذارم. با تکهی پد آرایشی مشغول پاک کردن آرایشم شده. خودش گفت. شوخی می کرد باید. البته حقیت بود. از بس تکرار کردی مرد ورزشگار و فعالی بود. پس چه کاری براش میکنی؟ هرچند مطمئنن همشو نمیگی. گاهی می اما فقط تا کمه. نگاه خیره پاتریک پاتری که از خیلی چیزها می کرد. اما در نهایت صورتش را برگردند جورابش را در آورد و داخل سبد رخت چرکا انداخت از اول چنین قراری نبود نگفته بودن از این اینجور کارا باید بکنی این اینجور کارای خیلی خیلی شخصی توی شرع وظایفت نبود بعد یک بار فکری به ذهنش رسید میتونی شکایت کنی انفصال از کار به طور قانونی آره همین حالا که شرایط کارو تغییر دادن چرا نگو. گاهی که نیتنیس من این کار رو میکنم. واسه ویل سخته که یه غریب از شرکت خدماتی بیاد و این کار رو براش بکنه. تازه، این کار برام عادی شده. واقعا اذیت نمیشم. چطور میتوانستم برایش توضیح بدم که آدم میتواند با یک بدن خوب بگیرد. می میتوانستم در نهایت مهارت لوله هایش را عوض کنم و بدون کمترین وقفی در صحبت من با اسفنج بالاتنه لختش را ب حتی جای زخم روی مچ دستش هم برایم عادی شده بود. مدتها تنها چیزی که می دیدم و توجه داشتم این بود که مبادا دست به خودکشی بزند. حالا فقط برایم ویل بود. ویلی که کفر آدم را در می آورد. دمدمی مزاج و غیر قابل پیشبینی بود. باهوش و بامزده بود. کسی که با من رفتار آقا نشانه و بزرگوارانه داشت. بدنش برای من فقط بخشی از کل وجودش بود. چیزی که در فواصل صحبت من به آن هم رسیدگی میکردم. از نظر من کارهای مربوط به بدنش هم جذابیت خودش را داشت. باورم نمیشه منو تا که دوستایی نزدیک هم هستیم مدت ها همدیگر رو ندیده باشیم. این وسط غریبه هست که تو خیلی خوشحالی وقتی تو باش بگذرونی و همش پیشش باشی و... پیک میشه امشب دست برداری رو اصاب نری؟ مثل اینکه تولدمه من نبودم که شروع کردم مگه من بودم که حرف از هموم و این چیزا زدم چون که پاره <تصفح> لابد بیشتر ترجیح میدادی واقعا یه موجود نباتی بود راحتتر بودی مگه نه پس تو خوشتیپ می‌بینیش؟ <تصفح> اصلا باورم نمیشه که تو بهش حسادت کنی من بهش حسادت نمیکنم با لحن سرد و بیا اعتنای ادامه داد چطور میشه به یه معلول هستاد کرد؟ پاتریک آن شب نهایت تلاشش رو به خرج داد تا من به رضایت کامل برسم. موفق هم شد، ولی فقط به خاطر فیل بود. بعدش پاتریک فوری خوابش برد، ولی من هر کاری کردم خوابم نبود. بلند شدم، به توقعی پایین رفتم و از کیفم کتاب داستان‌های کوتاه فلانری و را درآوردم. پاکت نامه هم با آن بیرون افتاد به نامه ماتم برد کارت فیل بود وقتی سر میز بودیم بازش نکرده بودم حالا این کار را کردم حس کردم چیزی داخلش است. کارت را با احتیاط بیرون آوردم لایه کارت ده اسکناس پنجاه پوندی بود دو بار شمردم با منم نمیشد درست میبینم داخل کارت نوشته بود هدیه تولد، کلی بازی در نیار، قانون ملزم می‌کند.